کتاب فقط برای تفریح فصل سوم فرش قرمز بخش نهم آیا انقلاب لینوکس به پایان رسیده است نوشته اسکات بیریناتو پی سی ویک از تماس شما ممنونم انقلاب به پایان رسیده است اگر اطلاعات بیشتری در مورد لینوکس می خواهید، لطفاً یک را فشار دهید. به نظر می‌رسد لینوس لینوز پیامگیرش را به این پیام تغییر داده و لابد معنایش این است که لینوکس در دنیای سرورها به سیستم عامل اصلی تبدیل شده و بهتر است انقلاب را فراموش کنیم و به کار روی میز کارهای ویندوزی خود برگردیم. روزگاری بود که طی آن خبرنگارا می توانستند به نویسنده لینوکس زنگ بزنند و در دفتر رازالود ترانسمیت با او کمی صحبت کنند. آن روزها وقتی زنگ می زدید، یک نفر با لحچه شیرینش گوشی را بر می داشت و از آن طرف خط میگفت، گفت Torvalds. با حوصله بود و به سوالات شما جواب میداد. اگر هم وقت نداشت به شما می گفت. حتی ممکن بود به شما بگوید که مشغول پرسیدن سوالاتی هستید که هر برنامه نویس آموزی هم جوابهایش را می داند. اما به هر حال به تلفن شما جواب میداد. امروز اگر شماره یه را بگیرید و کد داخلی لینوس را وارد کنید صدای زنانه مهربانی به شما می گوید متشکرم که به لینوس تروالد زنی زده اید. این صندوق پستی صوتی پیام جدید قبول نمی کند برای تماس با لینوس فکسی بفرستید به شماره فلان احساس من این است که او با من تماس نخواهد گرفت به اندازه کافی با خبرنگاران حرف زده حالا او یک آدم مشهور است و حرف زدن با او هم همان دردسرهایی را دارد که برای حرف زدن با آن یکی آدم مشهور دنیای کامپیوتر باید متحمل شوید صدای زنانه دارد شماره فکس را میخواند. و من به این فکر هستم که همان ترکیب قدیمی صفر مربع را بزنم برای ارتباط با مانشی. متاسفانه مانشی های شرکت نمی توانند پیامی برای توروالز بپذیرند. امکان برنامه ریزی برای ملاقات هم ندارند. این خانم هم مهربان است ولی اوضا بد می شود وقتی که تکرار می کند. با خوشحالی می توانم فکس شما را قبول کنم و آن را به ایشان بدهم. شاید مشکلات بیلگیس کمتر شده باشد. قبول انقلاب لینوکس تمام نشده اما مثل هر انقلاب دیگر جوش و خروش اولیه آن در غریب همراهانش گم شده است. موسیقی جدید در حال خاموش کردن جوش و خروش پانک رایک است. مالیات دهندگان فقیر حالا دارند به ثروتمندانی تبدیل می شوند که کارخانه ها را در دست کردند. در واقع لینوکس تا اینجا هم خوب دوام آورده است. کنار کشیدن او از دنیای خبرنگاران غیر قابل اجتناب بود فقط کافی است به تعداد تلفن‌ها، از طرف رسانه ها و حجم دیوانه‌کننده کننده موضوعاتی که از او پرسیده می شود فکر کنید نگاهی به جلسه پرسش و پاسخ نمایشگاه بین لینوکس که همین ماه گذشته در سنخوزه برگزار شد بیاندازید لینوکس قبول کرد در این جلسه پرسش و پاسخ شرکت کند چون برایش امکان نداشت، به ببینهایت درخواست مصاحبه فردی پاسخ بدهد. پاسخهای او پاسخهای تکراری به سوالات همیشگی بودند. آیا متن باز در دنیای تجاری هم کارایی دارد؟ آیا تو تلاش میکنی همانطور که بیل گیتس دنیای نرمافزار را کنترل میکند، دنیای نرمافزار را کنترل کنی؟ نظرت درباره مایکروسافت چیست؟ متن باز چیست؟ لینوکس چیست؟ چرا پنگوان؟ در اینجا است که احساس میکنید توروالز به یک قهرمان ورزشی تبدیل شده که جواب همه سوالهای مرسوم را میداند و ماشینوار آنها را تکرار میکند به تیم رابینز فکر کنید که در فیلم میگوید من باید هر طور شده به زمین میرفتم و 110 و درصد تلاشم را میکردم تا تیم نتیجه بگیرد بدون نیاز به طولانی کردن بحث این را هم اضافه کنم که بعضی پرسش های خبرنگاران هم واقعا بی ربط است مثلا در همان کنفرانس مطبوعاتی خبرنگاران فنلاندی میپرسد که هدف لینوس برای تسغیر بازارهای تجاری کوچک و متوسط چیست جواب معمول توروالز این است که در تلاش برای تسغیر هیچجا نیست کمی بعد یکی از آن خبرنگارانی که می‌خواهد ثابت کند درک و دیدگاه جدیدی درباره متن بازدارد از توروالز نظرش را درباره تلاش بعضی شرکتها برای ثبت تجاری ژنوم های محصولات کشاورزی میپرسد، جواب معمول توروالز این است که وقتی صحبت از ثبت تجاری می شود من معتقدم که هم نوع خوب آن وجود دارد و هم نوع بد آن. راهنما برای برنامه‌نویسان در حال پیشرفت. هر وقت کسی از شما در مورد ژنوم محصولات کشاورزی پرسید یعنی وقت آن شده که روی تلفن‌هایتان منشی خودکار نصب کنید. پس شاید تصمیم تروالز برای جواب ندادن تلفنها چیز بدی هم نباشد. البته ما صفا و سادگی تروالز را از دست می دهیم که برای خبرنگارانی که اکثر مواقع با فشورده شدن گلویشان توسط تاجران از خود راضی مواجه بودند جذاب بوده است. اما امیدوارم که اگر فکس ها به او برسند و او واقعا به آنها پاسخ بدهد آن جنبه دوست داشتنی تروالزیش حفظ شود. چرا که اگر صدای منشی تلفنی بر صدای لینوس غلبه کند لینوکس دیگر به مفرحی سابق نخواهد بود خب فکر میکنم به آقای بریناتو یک توضیح و نه عذرخواهی خواهی مدیون هستم کسی که این ستون از مجله پی سی ویک را بخواند؟ فکر خواهد که من نردی هستم که تازگی ها از خودم یک آدم مزخرف ساختم ولی اینطور نیست من همیشه یک آدم مزخرف بودم بگذارید از اول شروع کنم به نظر من پست صوتی یک چیز شیطانی است نمونه خوبی از یک تکنولوژی بد به نظرم این ایده بدترین تکنولوژی موجود است و با تمام احساس از آن متنفرم در ترانسمتا هر یک از ما یک صندوق پستی داشتیم که 20 دقیقه گنجایش داشت و بعد از پر شدن تماس گیرنده را به سمت منشی هدایت می کرد صندوق من همیشه پر بود به نظرم دردسر از زایی شروع شد که خبرنگارها دائما به منشیهای شرکت زنگ میزدند و از پربودن صندوق پستی من شکایت میکردند. احتمالا بعد از صد شکایت اول منشیها هم خسته شدهاند و با بدخلاقی صحبت کردهاند آنها میدانستند که من نمیخواهم با خبرنگاران صحبت کنم و در عین حال دوست نداشتند که وظیفه گفتن این حرف به افراد بر عهده آنها باشد. برای خلاص کردن منشی های شرکت من شروع کردم به پاک کردن پیام های صوتی بدون گوش کردن مشکلی هم نبود چون خیلی وقتها حتی به پیام های خودم هم گوش نمی دهم نمیدانم چرا ولی به نظر می رسد مردم وقتی که با سیستم منشی خودکار طرف هستن صدایشان را مبهم می کنند تا من مجبور باشم هر پیام را برای فهمیدن منظور و شماره تماس پانزده بار گوش دهم از طرف دیگر وقتی دلیلی برای این کار وجود ندارد من به کسی که تلفنش را برایم گذاشته زنگ نمیزنم فکر کنم آدم ها بعد از پیام گذاشتن خوشحال هستند که من به آنها زنگ خواهم زد و بعد که میبینن اینطور نشد ناراحت میشوند در این وقت است که مراجعان به سراغ منشی ها می روند. آنها نمیدانستند در این شرایط باید چه بگویند و در نتیجه از آنها خواستم که شماره فکسم را به مراجعان بدهند خوبی فکس این است که به همان راحتی پست صوتی می توان از دستش خلاص شد و تازه پیدا کردن شماره تماس هم در آن راحت تر است. البته اگر بخواهید که من هیچ وقت نخواستم. در ابتدا اوضا خوب بود و منشیها محترمان شماره فکس من را به افراد می دادند. در نهایت افراد کشف کردند که من فکس ها را نمی و بعد از یک هفته تلفن های جدیدی شروع شد که در جواب به فکس بفرستید میگفتند که فکس فرستاده اند و ترتیب اثر داده نشده. منشیها دوباره گیر کرده بودند و من که پاسخ که تلفن های من وظیفه آنها نیست. درست است تعبیر آقای بریناتو از روزهای قدیم لینوکس این روزها دیگر وجود ندارد ولی این را بدانید که من همیشه آدم مزخرفی بودم این جریان یک جریان جدید نیست. راه حل مبتنی بر فکس زیاد دوام نیاورد. در نهایت ترانسمیت ها یک دسترسی ویژه برای منشی تلفنی در اختیار من گذاشت که اصولا صندوق پستی نداشت. در همان زمان ترانسمیت ها یک منشی جدید استخدام کرد که حاضر بود داوطلبانه تلفن های من را جواب دهد. به من گفته بودند که او برای این کار آموزش هرفهی دیده است. این روزها به من توصیه شده که حتی اگر نخواهم با آنها مصاحبه بکنم حتما پاسخ تلفن خبرنگاران را بدهم یا بعدا به آنها زنگ بزنم چون احساس مثبتی نسبت به من و لینوکس در آنها ایجاد می کند جواب من این است که احساس مثبت آنها برای من مهم نیست امروز اگر پشت میزم نشسته باشم جواب تلفن های خودم را خودم می دهم ولی نباید از این موضوع برداشت کنید که به راحتی در دست رسم این تصمیم سیاسی هم نیست. مفهوم متن باز هیچ وقت به این معنا نبوده که من از بقیه قابل دسترسی تر باشم. من هم هیچ وقت از بقیه در دسترستر تر نبودم. مسئله اصلا این نیست. مسئله اصلی این است که حتی اگر من شیطان مجسم باشم و مستقیما از جهنم نزول کرده باشم مردم حق دارند بی خیال من شوند و خودشان تغییرات مورد نظرشان را در سیستم عامل اعمال کنند. مسئله درباره در دسترس بودن نیست. مسئله این است که آنها حق دارند، من را کنار بگذارند و خودشان به متن دسترسی پیدا کنند. این است که مهم است. هیچ نسخه رسمی از لینوکس وجود ندارد. چیزی که هست نسخه شخصی من است و نسخه شخصی یک نفر دیگر. نکته این است که مردم اعتماد بیشتری به نسخه شخصی من دارند و از آن مثل یک نسخه رسمی استفاده می کنند. چون دیدن که 9 سال تمام است که من متعهدانه روی آن کار کردم من اولین نفری بودم که روی لینوکس فعالیت کردم و ایده اکثر مردم هم این است که کارم خوب بوده است فرض کنید امروز سرم را بتراشم و ببینند که روی آن نوشته 666 و بعد فریاد بکشم که جلوی من زانو بزنید وگرنه همگی نفرین خواهید شد مردم خواهند خندید و اددهی خواهند گفت ما کد کرنل را برداشتیم و رفتیم سراغ کار خودمان تو هم هر کاری دوست داری بکن مردم به من اعتماد دارم و تنها دلیل این اعتماد این واقعیت است که من در طول 9 سال گذشته قابل اعتماد بودم این حرف اصلا به معنی این نیست که من علاقه مندم به پیام های صوتی گوش کنم تا جواب هر کسی که به من زنگ زده را بدهم اصلا هم دوست ندارم به این عنوان که یک آدم خوب و دوست داشتنی که با هر کسی حرف میزند و جواب هر تلفن یا ایمیلی را میدهد، مشهور شوم. حالا که مرتبط است، این را هم اضافه کنم که داستانهایی که من را یک راهب از خودگذشته معرفی میکنند که ای به پول و زندگی مجلل ندارد، به نظرم عجیب و بیرپ می آیند. بارها سعی کردم با این تصویر از خودم مبارزه کنم، ولی این نوشته ها هیچ وقت به چاپ نرسیدهاند. من دوست ندارم چیزی باشم که رسانه ها دوست دارند باشم. واقعیت این است که با تصویر آن راهب از خود گذاشته مشکل دارم چون با مزه نیست. حوصله سربر است و غیر حقیقی است. پایان بخش نهم از فصل سوم فرش قرمز. برای شنیدن شماره های بیشتر از این کتاب صوتی رایگان به وبسایت آواسام مراجعه کنید.